خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن وعلى ما بعد كتابي رو كمي در واقع انتخاب كنين ابتدا كتابي قوائد الصغرية هن فوائده از ابن السلام بود ولی ازون جاي كخود الكتاب وجود نداشت گفتين قوائده فقه بخونين إن القواعد الفقهي يكين نخونين بازم من میخواستم الوجیز استاد زیدان رو بخونیم چون حقیقتا کتابی بسیار علمی که ولی بازمون شما خونده بودید دیگه این انتخاب کردیم استاد زیدان در الوجیزش میاد و تا قاعده رو شرح میده توضیح میده چند تقایده رو؟ تا تقایده رو در این رابطه البته در رابطه با قواعد فقهی کتابات زیادی هستن چه حالا بعضی این اسمو دارن بعضا دیگه انوانای دیگه دارن ولی در کل کتاب زیاده مثلا عن قواعد الفقهیه محمد مصطفی زهیلی برادر همین وحبت زهیلی هست این دکترای فقه مقارنو داره تو جانه ازهر و کتب زیاده دیگه ای که وجود داره خب اونا رو نمیشه تو این دوره یک هفته خودمون بخونیم و این 47 بیت خیلی مفید و مناسبه که شیخ سعدی اینا رو خودش سروده این منظومه رو و در 47 بیت اینو جمعوری کرده در این که علم قواعد الفقیه یکی از مهمترین علوم شرعی هست ببین بعضی از این دوستان ای که هنوز نخوندند معمولا یعنی این نوع علوم رو احمیت نمیدند حتی بعضی به این نتیجه رسیدن که قرآن و سنت دیگه خلاص هرچی مستقیم از قرآن فهمیدی و از ولی یه سری ابزارهایی هست برای فهم قرآن و سنت اگر اون ابزارها به شکل کلی گرفته بشه حقاً و انصافاً وسط فقهی انسان رو گستردهتر میکنه سبب میشه که انسان مخالفینو بهتر بقبوله و همین نوع ابزارها بودند در طول تاریخ دست فقه ها که به خاطر مسائل فقهی هرگز و هرگز بر هم دیگه نتاختن. هرگز هم دیگه رو تکفیر نکردند. الان چند روز پیش شمکه این داده بودند. حیعت فتوه جنوب در رابطه با همینی که نواز جمعه ساقت میشه ببین حتی بعضی از این طلبه هایی که هنوز تو عربیشون موندن تو بلوچستان ما مثلا نومدن در سطح تکفیر حتی رسیده بودن تو تزلیل این کار خیلی خطرناکه. این کار خیلی خطرناکیه که در این همچنین مسائل فروی انسان بیاد این همه گستاخ باشه، جرعت داشته باشه، خب اونا مجموعی از اهل علم اند، فتوهشون رو شما میتونی فتوا رو نپذیری، ولی نمیتونی صاحب فتوا رو چکار کنی؟ تمام اینا بر اثر نداشتن ابزارهای اجتهادی و فقیه، بنده خدا میاد میگه نه این صراحتا مخالفت با شریعت اسلامه، لذا این مسئله اصلا اجتهادی نیست که تمام اونا رو معذور بدونی آقا محترم حتی مسائل اجتهادی در بحث لغت پیش میاد یک فقیه لغتی رو معنای دیگر میکنه فقیه دیگر معنای دیگر شما موقعی میاد تمام قواعد و کنار هم میگذاری آیاتو جو، نه یک جزء نه س رو کل تمام آیه تو کنار هم میگذارید اون موقع نتیجه میگیری متوجه میشه که این یک اجتهاده و ما کاری فیلن روی این مسئله نداریم در کل منظورم اینه که این علم قواعد فقهی و اصول فقه حتی بعضی از ضوابط فقهی اینها سبب میشند ابزاری میشند که انسان در برداشتهاش از نصوص شرعی دقیق تر باشه به این خاطر بزرگان فقه در رابطه با قواعد فقهی نظریاتی داده از جمله مثلاً قرافی در کتاب الفروقش میگه که این قواعد در فقه بسیار مهم هستند نفعشون بسیار زیاد هست و بهمان اندازه که فقیه بر این قوائد تسلط داشته باشه عظمت و شرف داره و علمای دیگر در این رابطه گپ زدن حافظ ابن رجب که خودش در این رابطه کتاب داره تایید میکنه امام سیوتی شما میون ما الان مثلا چند دقیقه پیش که گفتیم امام سیوتی مخالفتایی شد در حالی که شارح این کتاب شارح این کتاب خودش منهج السلفیه رو داره یعنی میگه من سلفی هستم ولی با این حال میاد میگه امام سیوتی واقعا سیوتی امام بود حالا اگر اصلا هم نگه اگر گروهی اومدن هم نگفتن امام هست واقعا ایشون یکی که از اولما هست از اندیشمندان هست و بعد بهش چکار کرد ارچ قائل بود ولی معناش این نیست که ما گفتیم فلانی امام یا فلانی امامه تمام نظریاتش با بشه، بشه؟ عزیروفته بشه لذا امام سیوتی رحمت الله علیه هم میگه که بدون فن اشباه و النظار فن بزرگیست است که شخص بوسیلش به حقائق فقح و اسرار فقه می بره خود ایشون کتابی داره به نام الاشباه و النظایر دکتر قرضاوی میگه من کتاب ایشون رو کردم با کتاب الاشباه و النظایر ابن نجیم حنفی مصری رو هر اطالت مصریان میگه که اون از کتاب این خیلی گرفته اما اشاره به این چیز نکرده در هر صورت علمی است پرفایده ابزاری است برای دقیق چی؟ اجتهادات و خود قواعد فقهی سبب میشند که انسان اکتفا نکنه به یک نص جزئی در در که میاد مجموعه روایات و نصوص رو در نظر بگیره با قواعد کلی که فقهای قبلی باز هم از نصوص و, و قواعد چکار کردند گرفتند حالا این قواعد فقهی این قواعد یا به اینی خودشون از نصوص گرفته شدند مثل لا ضرر, ضرر و لا ضرر که حدیثه یا از طریق اجتهاد گرفته شدند مثلا المشقت و تجرب و تأثیر قواعدی خوب این فقه با تو به نصوص شریعت و به مقاصد شریعت و مدن هم قواعد رو چیکار کردند وضع کردند. پس این شد از مسئله قواعدش ولی فرقی که اصول فقه با قائده فقه قائده اصولی با قائده فقهی داره ببین قائده اصولی با قائده فقهی اللحوز موضوع هم با هم دیگه چه فرق دارن موضوع قائده فقهی افعال مکلفی هستن افعال چه هستند؟ مکلفین هستن اما موضوع قوائد اصولی ادله شرعی هستن ادله کلی شرعی هستن و اله ها کلی بودن قوائد اصول فقه کلی و مترد هستن برخلاف قوائد فقهی که کلی نیستن بلکه اغلبی و اکثریت هستن خب اما اگر بیایم بررسی کنیم از جهت سرق قاعده فقهی رو با قاعده اصولی, اصولی. نه قاعده فقهی با ذابطه فقهی ببین قاعده فقهی یک قاعده که زیر مجموعش فروعاتی در تمام عبواب فقهی زیر مجموعش میتونن قرار بگیرند مثلا به عنوان مثال موقعی که میگیم این یک قایده فقهی هست و در تمام ابواب فقهی فرواتی زیر مجوش قرار میگرند در بحث سلا زکات طهارت ولی زابطه نه زابطه فقط مخصوص همون یک باب هست به این جهت هست که میگن فرق رابطه بین کلمه زابطه و قایده فقهی این هست که خصوص و خصوص مطلق است. یعنی هر زابطهی قائده فقهی هست و هر قائده فقهی زابطه نیست این شد از فرق بین اصول فقه قائده اصولی قائده فقهی و زابطه اما این رابطه خب قبل از ایشون قبل از شیخ عبدالرحمن الرحمن سعدي در طول تاریخ کتابه های نوشته شده است در این رابطه خیلی هم مهم بودند، خیلی هم علمی بودند. در معاصرین کتاب های نوشته شده است در فقه امامیه حتی در این مورد فاضل لنکرانی مثلا کتابی داره افراد دیگه کتابه زیادی دارن مصطفیه کتابی داره مکارم شیرازی مثلا منظور اینه که این قواعد فقهی تمام فرق اسلامی در این رابطه کتابه قواعد ف نوشتن یعنی yani این اهمیت چی رو میرسونه؟ این علم میرسونه. می رسونه خود دکتر عبدالکریم زیدان که اونو خوندی صد قائده رو میاره اصلا خود امام قرافی در کتاب الفروقش حدود 500 و خورد قائده رو میاره توضیح میده و فرق بین قواعده و فرق بین قواعده توضیح میده پس این شد از یک مقدمه بسیار کوتاه در رابطه با قواعد فقی از اونجایی که این ای نظم نظمی که ایشون سرودند شامل 47 بیته ما روزی اگر ده بیت بخونیم اگر روز چند بیت بخونیم؟ ده پنج روز طول میکشه انشالله تا این کتاب چی بشه؟ تمام بشه و برنامه ما هم همین هست که به اذن الله انشالله روزی چند بیت بخونیم؟ روزی ده بیتو بخونیم خب بیا شروع میکنیم موسیقیم میکنی هم ده بیت چون ده بیت اول باز هم مقدمه ده بیت اول چند؟ بعد از بیت ده هم بعد دیگه قوائد میشن؟ شروع میشن؟ میگه الحمدلله العلی الارفقی و جامع الاشیاء والمفرقی سپاس؟ الله بلند مرتبه مهربان مهربانی را که جامع و مفرق اشیاء است ببین علی صفت الله الارفقی همچنین جامع همچنین جامع و والمفرقی وال مفرقی بله این عطفه این هم مجرور شده پس حمد با تمام انواع و درجاتش از آن تروردگار بلند مرتبه مهربان است جامع و مفرق اشیاست جامع و چی؟ همه کاره تمام تصرفات کون در دست اوست ذه نعم الواسعت الغذیرتی و الحکم الباحرت دارای نعمت های وسیع بسیار زیاد هنوز داره صفات الهی رو دارای حکمت های بزرگ زیاد ثم بعد از این که ستایش الله متعال رو بیان کرد بعد از اون میاد چکار میکنه؟ درود برد اسلام. این تمام نویسندگان اسلامی اسلامیست و خود الله متعال هم کتابش رو با حمد پروردگار شروع میکنه الحمد لله رب العالمین ثم الصلاة مع سلام دائمی على الرسول القراشی الخاتمی بعد حمد الهی درود و سلام همیشه بر رسول قریشی خاتم خاتم یعنی خاتم الانبیا منظور از خاتم چی خاتم الانبیا بله که این صفتش رو قرآن کریم بیان می‌داره که بعد از رسول الله دیگه پیغمبری وجود ندارد پس صلوات سلام و صلات و سلام همیشگی بر رسول قریشی خاتم و اله و صحبه و و درود و درود و سلام بر آلش و بر یارانش بر اصحاب نیکویش پس بر آل و اصحاب نیکویش الحائزی مراتب الفخاری آنهایی که مرتبه های افتخار رو گرد آوردند کسب کردند یعنی تمام مرتبه های افتخار رو داورنده، آوردند کسب کردند بعد از این می اعلم هدیت ان افضل المنن علم یزیل شک انک و الدر اعلم هدیت ان فضل المنن علم یزیل شک انک و الدر بدون هودیته با سیغه چه اومده؟ مجهول با مجهول اومده بله بدان که هدایت بشوی درست فعل ماضیه ولی دعایی هست ولی خبر هست؟ خبره به معنیه؟ انشابه اعلم هودیته ان افضل المنن بدون که از افضلترین منتها علمیست، علمانه شک الشك و درن از بین میبره شک رو از تو و چرک رو منظورش معنوی چرکه؟ معنوی است بله منظورمون جهل هست پس بدان که هدایت راهی هفته شوی افضلترین ترین منات ها علمی است که زائل میکند شک رو از تو و جهل رو ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هنوز إدامي همون بيت هاس. والعلم كه إن يكشفه فايلش هوي هاس كبعلم برمجده. بسيب رمجده؟ وكشف ميكوند أن علم حقره برأي أن هاي كقلب دارن القلوب. ويوصل العبد إلى المطلوب وبندره بهمن حادف مطلوب. می پس از افضلترین منان منن علمی که شک و از بین می بره جهل و از بین میبره، حق رو کشف میکنه ظاهر میکنه برای شخص صاحب قلب شخص صاحب قلب به اون مطلوب میرسوند. و اینجا مطلوب ما همون هدف نهایی که به احکام برسه تمام قواعد و اصول ابزارن برای رس پیدا کردن چی أحكامات عالي خوب فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد بس حريس باش برفهمت برا قواعد برأي إنك قواعد رب فهمتي باش حريس باش فحرس على فهمك للقواعد حريس باش برفهميدنت برا قواعد جامعة المسائل الشوارد قوائد كي جم كرده است مسائل رماندرو مسائل كيرو فخشو طراكن بالي پس پس حريس باش برفهمت برچه للقواعد براي قواعد؟ جامعة المسائل الشوارد قوائده كي مسائل الشواردو چكار کرده انت؟ شوارد جمع الشوارده بمعنى الرمنده گريزنده فترتقي في العلم خير مرتقة وتقتفي صبل الذي قد وفقه اگر این كارو کرده يعني قوائدو فهمي اون موقع در علم به بهترین درجه خواهی رسید ارتقامیابی در علم به بهترین مرتقا، به بهترین درجه بالا رفتن و تقتفی صبل الذی قد وفقه و پیربی می کنی راه کسی را که وفقه وفقه فیل این اطلاقه و پیروی کنی راه کسی را که موفق شده است چه شده است؟ موفق شده است ها دهی قواعدون نظمتوها من کتب اهل علم قد حصلتوها اینها قواعدی هستند که من اونا رو به نازم درابردن شکر خبدر رحمان سعدی رحمه الله میگه اینها قواعدی هستند که من اونا رو چکار کردم؟ به نازم درابردن از کتابهای علم از از اهل علم من اونها رو حاصل کردم از کجا از کتابهای اهل علم من کتب اهل العلم قد حصلتها از های اهل علم اونها رو حاصل کردم در بیت دهم میگه جزاؤهم المولى عظيم الاجر والعفو مغفرانه والبر جزا دهد آنها را مولا این یعنی پروردگار عظیم العجری عجر بزرگ پروردگار آنها را عجر بزرگ بدهد دیگه چی بدهد؟ این را حرف عطفه که عطف به عظیم هست والعفوه دیگه جزایشان بدهد چی؟ افرا ما اغفرانیهی همراه با غفرانش والبری یعنی همراه با غفران و همراه با به تا اینجا ای کار کافی اکتفای میکنیم انشالله از فردا به اذن الله اولین قاعده رو که در رابطه با نیت هست با هم شروع خواهیم کرد موفقو پیروز باشید